بسم الله الرحمن الرحیم موضوع صحبت این جلسه آخر و زمان هست آخر و زمان یا قیامت یا به قول قرآن هست. از سایه که این بحثی سزاران تو و هزاران در و معنا داره حال من پیشناهت میکنم شما سوال بکنید ساداتون شروع بکنید متشکرم از شما من میتونم قدر از اینکه ما دخلی رجوع آخر و زمان صحبت بکنیم یه کمی رجوع زمان صحبت رفرمید خود لغت آخر و زمان به ما این رو نشون میده که گویی زمان آغاز و پایانی داره بله؟ و برای همین از لغت آخر و زمان صحبت میشه خب این زمان چیست؟ ابتداش کجا بوده که الان آخرش هست؟ و آخر و زمان به چه است؟ این رو خواهش میکنم توضیح بدید و اصلا روش به زمان بیشتر صحبت کنید در متشکرم باشه. ملالساری است بسیار اساسی زمان فلسفه زمان راز زمان از جمله مسائلی در قلمرو معرفت بشری است که بسیار به ندرت در قلمرو فلسفه و حکمت مورد بحث قرار گرفته. و خصوص در قلمرو فلسفه که اساسا فلسفه یونانی بوده ما می‌بینیم این همه فلاسفه دست‌گاه‌های عظیم فلسفی بنا کردند اکثر اینها به زمان و به ماهیت و ذات زمان اشاره نهی ازن کسا خود زمان چی هست برخی ها مگر اشاره کردن اشاره نجومی بوده فقط واقعا اشاره معرفتی و یک کنکاشی معرفتی و ذاتی درباره زمان نبوده الا از فلاسفه عارف مشتب معاصر اروپا یک کسی به نام هانری برکسون هست که در فلسفه مدرن اروپا برای اولین بار این زمان رو به مفهوم دقیق و امیقتری ترک کرد فقط که اونم پیگیری نشد و مسقوط بود درباره مبدع و معاد زمان اول و آخر زمان خوبی این مطلب واضح اصلا معضله مبدع و معاد یعنی آغاز و پایان هر چیزی یک معنا و باوری است کاملا دینی تا این تردید نیست حالا همین اصلا باوری دینی اساسش اعتقاد به مبدع و معاد جهانه مبدع و معاد جهان یعنی اول آخر جهانه آیا جهان چیزی بوده که از هم اول ول بوده و تا آخره ول خواهد بود هیچ سامانی نخواهد داشت هیچ پایانی نخواهد داشت هیچ خواهیت و هدفی نخواهد داشت یا خواهد داشت مسلمان فلسفه دروی حتی از صفحه های به ظاهر دینی و مسیحی و شوه مسیحی به این قضیه نخواستن بپردازند. یک دید اینکه اصلا در سراغ زمان شو اینها آقا و ناخود آگان نمیخواستند به دین تعهدی داشته باشند لذا میدیدند که اگه برن سراغ موضوع زمان مجبورند به مسله آغاز و پایان بپردازند و از همینجا جا دینی بدان میکنند لذا دوربر زمان رو اصلا خط ققیمت کشیدن و به این مسله نفرداختند. و میدونیم که در دانش مدرن به خصوص در نجوم جدید در کیهانشناسی و فیزیک نظری فیزیک اتمی، فیزیک کوانتومی و فیزیک کیهانی و به خصوص در نظریات جدید مثل شرودینگر، هایزنبرگ، آینشتین و ماکس بلانک و این تیپ که بنای جدیدی از فیزیک رو پدیدا که خود در فلسفه و روانشناسی اثر عمیقی بخشید اینها رو اولین بار مادن زمان رو وارد دانش فیزیک کردند تا قبل از آن در جهانشناسی فقط دو موضوع مطلب بود ماده یعنی جرم و فضا یعنی مکان. زمان وجود نداشت اینها به خصوص شخص اینشتین اجت اومد انصار زمان رو وارد کرد در علم فیزیک و پدیده ای وجود آورد دو نظریه معروفش به اسم نسبیت آم و نسبیت خاص که اصلا انقلابی در اندیشه علمی پدید آورد و به خصوص در فیزیک نظری پدید آورد با خاطر وارد کردن انصار زمان در دانش علمی و فندی بود انصار زمان نابرین از این قلمرو رو دانش فیزیک جهان را سه انصاری دید ماده یعنی اجران، ذرات و کرات فضا یعنی مکان یعنی جایی قدم روی که ماده در اونجا میتونه باشه و زمان جهان سمنسوری یا سبودی و طبق محاسبات مدرنی هم که از طریق ابزار روالات تکنولوژی جدید و علوم دردقه و لابراتوری در خدمت این نظریات قرار گرفت فیزیک نظری و فیزیک ذریعی سعی کرد که عمر جهان رو بر اولین بار تعییم میکنه که جهان هستی آیا عمری داره یا نه وقتی از عمر صحبت میکنم طبیعتا از آغاز پایان صحبت می‌کنیم. آیا جهان هستی آن ماده عمری داره یا نه بله با اینکه چند زار سال سعی شد استن به این موضوع نه ولی جبران به این قضیه پرداخته شد طبقی این محاسبات چندین رقم در اومده برای عمر کائنات، عمر آلم ماده در اومده. که این سنجش اساسا بر اساس عمر پروتون که هسته مرکزی اتم و آلای ماده هست، اندازگیری شد. اینها گفتن که مگفم که پروتون که ذره ماده تشکیل دهنده، ذات عالم ماده و طبیعت هست ما گفنی اگه پروتون اون بهش چقدر ما زباقه تعین کردیم که کل عالم هستی چقدر از اون بهش یک رقم ده به توان ده سال نوری، یعنی میشه ده تریلیون سال نوری تعین شد باز طبق یک من منظر دیگری این رقم تبیر شد به ده به توان سی سال نوری این رقم هی بلافایی میشه این به ارغام مهم نیستن اصلا ولی مسئله اینه که بالاخره فیزیک مدرن پذیرفت که عالم هستی و جهان ماده و طبیعت عمر دارد آخر نیست روزا نیست یعنی خود دانش و علم فنی جبران تحمیل کردیم رو به علمای ملحد که ممکن مصحب بودند، که ممکن مبدا و مواد بودن و این واضح شد الارق میلشان که جهان مبدع و معادی داره جهان هستی عمری داره حالا این بحث رو فقط گفتیم که حتی دانش اروپایی هم جبران به این باور رسید تا داره این رو اعتراف میکنه این مسلم شده جزی بدهی حیاث رو اینکه این که این امسقده میشه داره از من دیگری این شکل بحث نگاه کرد ما دو زمان داریم یک زمانی است که اسمش میشه گذاشت زمان باطنی و یکی زمان بیرونی زمان مادی زمان جهانی که در واقع زمان نجومی هست همون زمانی که از طریق ساعت اندازی گیری میشه این زمان باطنی رو هانری برکسون و فیلسوف دیگر آلمانی حسیر یه مقدار روشکار کردن ولی به جایی کردند. ولی شروع بسیار خوبی بود شروع بسیار خوبی بود زمان باطنی در واقع باش کف زمان خاص انسانه زمان روحانی است. زمان بیرونی زمانی مادی و طبیعی و جهانی است. زمانی درونی در واقع زمانی روحی. طبیعتاً زمانی بیرونی که از طریق ساعت و ابزارهای دقیقتری که ساعت‌های اتمی و لیزری هم درست کردن تا یک هزار و یک میلیون ثانیه را مثلاً اونجا محاسبه می‌کنند، ماهیتش یک قرارم ساعت‌های اتمی در مورد ساعت‌های خورشیدی، ساعت‌های لیزری، ساعت‌های الکترونی، حتی ساعت‌های نوترونی صحبتش میشه. مایل این اینو واسط اسمش بذاریم زمان نجومی زمانی است که گردش و حرکت رو محاسبه می‌کنه پس واضحه که زمان در واقع حسابگر حرکت و گردش دگرگونی و تواری است زمان برای همینه از عنصر سرعت و فاصله در اینا از زمان صحبت میکنیم معنی از سرعت صحبت میکنیم و از فاصله صحبت میکنیم فاصله چی هستش بله والله من راضی ما می‌دونم یعنی فاصله جهان از خدا اینه. فاصله مخلوق از خالق آی واسش اینه پس ما می‌خوایم بگیم عمر این شی چقدره یعنی واسه دونیم که آقا این شی چند ساله و به چه میزانی از خدای خودش دور افتاده یعنی چند مدتی خلق شده خلق شدن دور افتادن و شدنه شدن دورافتادگیه این حضرت همون دوری خداوند می انسان رو من در علالی لین خلق کردم و سپس در اطفال صافلین اون رو پرتاب کردم این هم جریانه جا خیزت این, این و اما زمانی باطنی که زمان روحانی است مطلقا قابل محاسبه نیست زمان ریاضیاتی نیست زمان میکانیکی نیست این زمان باطنی البته یک زمان عرفانی است ولی آمی ترین انسان هم از این زمان برخوردارن و این رو احساس میکنن واقعا قابل رو گفت نیست این زمان. این زمان باتنی در واقع وقتی انسان میخواد اون رو احساس کنه جاابدانگی و ابدی رو احساس میکن. این زمان باتنی در واقع ابدیت. ابدیت چیست؟ بدیت خود خداست. انسان به میزان که این زمان در خود احساس میکنه در واقع مج گفت سرمدیت خدا و در واقع حضور خدا رو درقل خودش احساس میکنه چرا که؟ چقدر کلام دین دلخانه خانه خداس و منظر خداس برامین این زمان باطنی رو انسان در قلب خودش حساس میکنه هم دویگه زمان ظاهری و نجوموره انسان در ذهن خودش درک میکنه و حساب میکنه برسته؟ ام. و دو تا زمان داریم زمان ذهنی زمان قلبی زمان مادی زمان معنوی زمان نجومی زمان فیزیکی زمان ریاضیاتی و زمان روحانی زمان بشری، زمان الهی. پس آنقل انسان جاودانگی و ازلیتی بی آغاز و ابدیت بی پایان رو احساس میکنه یعنی وجود رو احساس میکنه در اینجا ببینیم زمان هم وجود مطلق، خودِ و در واقع جاودانگی خودش رو خودش احساس میکنه چرا انسان انسان واقعاً می‌تونه این زمان رو احساس کنه؟ درک کنه. چرا با اینکه صاحب روح خداست، خداوند از روحی خودش در انسان در میده؟ پس این زمان در واقع همون خود روحه، همون عبدیته، همون اراده و عمره است این مطلع رو ما در قرآن کریم هم داریم در احادیث اسلامی و در خدمت اسلامی رو هم این مسائل وارش شده، مفهومه. پس در واقع زمان، نباتنی، زمان انسانی، یعنی جا بزر روحه. در قرآن آمده که ساعت میکنند، که از تو ساعت میکنند، نای پیان بر روح چیست؟ بگوره، روح، عمره، فرورده امر فرد و قردگار یعنی هراده فروردگار بنیزاتی فروردگار یعنی قدرت کنفای کنفای کنفای فروردگار خب پس این مطلم این مقدار واضح تر میتونه باشه کلامی داریم از رسول اکرم صلی اللہ علیه واده که کلامیست به قایت عالی که به ندرت در خکمت اسلامی مدت رو بحث میشه پرانبال اکرام میفرماد که من زمانم من زمان هستم خب این خیلیه چه من زمان هستم یعنیشم طبیعی اگر محمد سروره هم گیرانست و انسان کامله و مظهر روح الهیست خب با در واقع بیتر میشه بردید که وقتی این فرمان زمان هستم یعنیش یعنی من ظهور سرمدیت و جابدانگی پروردگارم من ظهور جمال روح خدا هستم یعنی بله. من عبدیتم هم. برای همین که نبوبت خرد شد یه نکته دیگری اینها البته صدها ساعت صحبت کردند هم کمه ما فقط نشارات میکنیم فقط نشانه ها رو میگیم تا قابل تعمل باشیم این واقعا شاکلید ها و گنجه های معرفت دینی که در اسلام هست متسطفانه همه هم مدفونه هرگز کسی سراغ بینار نرفت. ما فقط سر می یه بردی معرفی کنیم و از زیر خاک درش بیاریم ما در حکمت اسلامی و همچنین در قرآن کریم در چخنان مفصلی از پیامبر، و علیه الاسلام و سائر حضور زمان صادق ما داریم که کل آدم هستی گردش تاریخ, تاریخ هستی دو گردش بوده معروف به دو قوص این دو قوص در قرآن هم آمده قاب قوصین دو, قوص. دو قوص در واقع مراجش این دو قوس رو تقیی کرده. یکی قوص معروف به قوس نزول و یکی هم معروف به قوص یا قوس رود قوص نزول قدم رو به خلقت قدیم و اولیه پروردگار هست در قوص نزول, نزول قوص سعود قوص پرتاب کردن و برون افکنی خالق دیگار عالم و آدم رو خلق کرد و برو افکند و در واقع این همان انسان رو در این خلق کردن و در اسفار مصافرین کردم این یعنی در دورترین حد از خدا پرتاب کردیم برای همین در اونجا انسان عالم همه چیز معانی ذات و مجرد مطلق بود معنای مرز و نور مطلق بود در این دورشدانی از خدا خلق شدند، تعیون بدا کردند، ماده شدند. ماده یعنی درکسال استافلین، در رو درکسال استافلین یعنی جهان ماده، جهان سقل، این در امروه خلقته. علیه هم میشه گفت کل آلام طبیعت و کائنات درکسال استافلین. خب، این قرصی نزول، خب در قرآن کریم داریم که خداوند دمین و آسمان ها و هرانچی که در آن هست و هزوند انسان رو در شش روز خلق کرد این قوسی نزوله این زمان نزولی. خوب، این زمان نزولی خب این زمان نزولی قوس نزول که قلم رو خلقته خب ما میدونیم که باز هم در قرآن داریم که خداوند فرماد هر روز در نزد خدا برای شما انسان ها هزار سال است از سالهایی که میشه مورید ها؟ این پس در واقع 6000 سال طول کشید تا قلقت عالم آدم کامل شد که دو روز آخرش طبق کلام قرآن فقط مختص انسان بود دو روز آخرش فقط مختص همین آدم بود یعنی کل کامل نادی به انتها چهار روز گرفت؟ گرفت دو روزش فقط دنورد انسان بود که خواهر کرد و در روز هفتم فروردگار بر خود مستقر شد و شاهد شد بر انسان که ببینه که چه کسی نیکوکارتر است روز هفتم. خب بنابراین این مسئله شش روز در واقع برای ما انسان ها شیش هزار ساله علال تاریخ بشر تا انجایی که تاریخ تمدن هم امروزا این حساب ها رو در داره نشون میده باستان شناسی ها که میتونه تاریخ رو اندازگیری کنه همچنین دریای از سخنان وجود داره در تورات انجیل، منتر از آن در قرآن و در احادیث قدسی در سخنان یک و امیت هار به خصوص حضرت علیه علیه السلام که مشابهاتش در تورات انجیل هم شده حتی در عوستا و در اپانیشادها هم مشابهاتش هست که کاملا میشه حساب کرد که از زمان حبوط آدم خروج انسان آدم حواظ بهش تا از تا خاتم یعنی تا ظهور پیامبر اسلام شش هزار سال طول کشه دقیقا شش هزار سال طول این را از طریق تاریخ نبوت ها کاملا امروزه میشه حساب کرد و حسابشان درسته من یک بار محاسبه رو دقیق کردم دیدم هم از لازه علیم و بشری و هم از لازه عادیس دینی اخبار دینی اینها ها کاملا با هم دیگه میخونه از حبوط آدم بعد حب ابراهیم، موسی، عیسی و تمام این پیامبران جلوی ما آمدند تا ظهور پیامبر اسلام، برای من میگن از آدم تا خاتم، خاتم یعنی خود محمد صلی الله علیه و آله این بود. شش کشیده. یعنی این همون شش روز خلقت عالم آدم کامل شد. و با ختم نبوت و کمال نبوت و پایان نبوت و آغاز امامت روز هفتم آغاز شد. یعنی 1400 ساله که ما در روز هفتم قرار داریم که خداوند در عرش نشسته است. پس زمان با پیغمبر اسلام و با کمال نبوت ایمان حضرت آخر رسید 6 سال تمام شد و ما الان در روز هفتمیم روز هفتم روز قیامته برای هم دین اسلام دین آخر زمانه محمد را میگن پیغمبر آخر زمان میگن ما با سالی که روز هفتم شروع شده خب روز هفتم بازم در قرآن آمده روز هفتم روز قیامته قدم رو آخر زمانه روز پنجاه هزار ساله این مم. یه روز زن از خدا یه روزه ولی برای بشه پنجاه هزار سال به طول خواهد انجام ده نه هزار سال پنجا هزار سال بله مم. قیامت طویل روزه یعنی از صبح تا شام قیامت پنجا هزار سال طول میکشم بله. و از اون روز پنجاه هزار سال قیامت که آخر زمانه هزار و شار سال تقریبا داره میدید از اون شش روز یا شش سال زمان نزولی بود دوران خلق شدن بود کامل شد و این روز پنجه ساله که 1400 سال شروع شد از این روز پنجه ساله که قیامت آخر زمانه این قوص سعود و عروج و زمان سعودیست زمان عروجیست قدم روی انا لله انا راجعونه اون شش روز اول همه از خدا دور شدند به دورترین حد رسیدند و از روز هفتم حالا رجال خدا میگه خیلی خوب حالا برگردید به سوی من همه از منید و به سوی من برگردید کل عالم هستی و به بینده و مخلوقات از جمعه انسان خواه ناخواه تو انوکرهن دارن به سوی خدا باز میگردند محمد همه در حال رجال به سوی خدا هستیم این در قوس سعود هستیم این هم زمانی است دیگر این زمان آخر زمان این زمان قیامتی است برای همین در قرآن کریم قیامت در چندین جا با لفظ عصا اومده اسم دیگر در قیامت عصا است عصا همین الان چندین با این آیه, آیه در قرآن اومده که اگر پیامبر رسول بپرسن قیامت کیه قرآن میذادت او عصا یعنی رو بر شروع میشه در اصا رسیده است عصا دو قدر هم اسم دیگری قیامت در قرآن واقعه است که سوری بسید واقع واقعه هم واقعه همی چی؟ اینو واقعی هست این در این قلم رو به ها؟ که همه حقایق و اسرار جهان واقعیه و تأیین پیدا می کنه خریقت این واقعیت می شه خود. برای همین در این قلم رو این قلم رو که قدم روی خط نبوته فقط قدم روی معرفت نفسه برمه مسلمان محمدی در این چهار دقه فقط نیست که اهل معرفت نفس باشه خود مسلمان می زین پس فقط رهربان معرفت نفس هستند که به حقایق این من می و آن را تصدیل می و رستگار و هدایت می شن و این همین ذکر ذکر همین بیادا بردن بیاد آوردن 6 شش روز اون شش هزار سال از آدم تا خطن. ذکر این رجعت همان ذکره ذکر بس ورد فوت کردن نیست پس بیاد آوردن این شش هزار ساله این بیاد آوردن همان واقعه رجعت الالله هست همان سیر سعوده همان سیر سعوده خب بنابراین اگر در این بازگشت تمام عدهش های شده در قدم روی نزول پوچ بشه. طبیعیه دیگه تمام آن چیزهایی که هایی که, که بر اون اساس انسان تونسته درک کنه توی هزار سال این راهی اومده رو حالا تماس برد می‌گرده. یعنی از اون مجبور بگذره. همه اونها باطل میشن. برای همینه که در آخر زمان الله از عدهش قدم رو به نیلیز شدن. ها. باطل دنیا این را حضرت علی به وجود اعلام کرد. می که این مؤمنان هوشدار، هوشدار که رشده های بقای دنیا پاره شد یعنی این همین من و از دنیا جا سم و زهرابی نماند ای مؤمنان کولبار ور بندی و بسایی بسوی خدایتان حرکت کنید مکس جایز نیست میتستم که مکسی شما را قافل کنه و شما حلاق بشید که کل دنیا و جهان داره به سوی خدا برمیگرده و دیگه جای ماندن نیست دور ماندن به سر رسیده است بازگردید این در واقع چیه؟ اعلام قیامت. خب علی هم خود رسول اکرام فرمودن که پرسمدار قیامت و بهبا کننده قیامته امامان هم میتورن امامان و عارفان که همه ا و در اجاعت امامت این ها و اعلام کننده قیامت هستند این پارشدن رشته بقای دنیا یعنی آغاز قیامت پس این اعلان شد توسط علی. ای این قیامت رشته های بقای دنیا شده است. پس در این رجعت طبیعتاً که همان قوس سعود و زمان سعودی است که روز پنجه هزار ساله است ما در این عرصه قرار داریم که تمام ارزش‌ها و معانی دنیا که در قوص نزول اتفاق افتاده بود که عرضش مادی بود، دنیوی بود همه جبرن پوچ میشه و بر سر انسان میشکنه و انسان باستی دست بکشه، باستی خداحافظی کنه دیگه از دنیا واقعا باستی خدا باستی بره با توجه به توضیحاتی که شما دادین پس زمان با حبوط حضرت آدم از بهشت آغاز شد و پس از گذشت شش هزار سال به حضرت محمد به عنوان خاتم و رسید و همکنون ما در روز هفتم به سر میبریم که پنجاه هزار سال طول میکشه اما علم جو فیزیک در محاسبه عمر زمین صحبت از میلیارد سال به با توجه به صحبت شما گویی قبل از حضرت آدم عمر کائنات میلیارت ها سال قبل محاسبه شده میلیاردها ها سال محاسبه شده و بعد حضرت آدم خرق شده و همطور که شما گفتی اگر که خلقت جهان در شش روز به تون انجام میده که دو روز آخر اون مخصوص بشر بوده این میلیارد ها سال عمر زمین و کائنات همون چهار روزه و بعد از خلق حضرت آدم و حبوط آدم به از بهشت تا حضرت محمد اون دو روزه که فقط مخصوص انسانه این رو توضیح بدید این میلیارد ها سال بانی ششه سال این چیز از یه تر این واضریه که وقتی صحبت از زمان می‌کنیم زمان فقط برای بشر هستی مفهوم میشه ولی این میلیارد ها سال محاسبه شده این چیز بالاخره زمانی این رو ممنون میشم خب قبل از هر چیزی اشاره کنیم اون رو تو صحبت قبل من گفتم زمان به عنوان یکی از موضوعات اندیشه و معرفت بشری پیچیده ترین و جادوی ترین موضوعاته <تصفيق> از یک معنای بی نهایت بودی و یک حقیقتی بی انتها و هزاران تو هست ما این که کردیم زمان رو به دو زمان کلی باطنی و ظاهری این تازه شروع فهم زمانه بدون تردید نمیشه سر زمان و تمام حقائق موجود بر مدار این معنای ذاتی رو با این فرمول ها مثل جدول زرق بیان کرده همچنی توقعیم شما نبست داشته باشیم نمیشه واقعا نمیشه این توضیحات فقط در این حد بود تا ما بتونیم با اون جنبه واقعی و انسانی و دینی بتونیم خودمونو برسونیم این تا در حد مقدمه هست بحثیم موضوع من در تابیدوی سر کردم در کتاب تحت عنوان حکمت ازلی و فلسفه آخرازمان نشون بدم که جمع بالی این کتاب رو مطالعه کردیم منظور اینه که امتظار نبست داشته باشین که بالی کمچین برای حضرت زمان رو درک کنیم و بتونیم یه درک منطقی ریاضیاتی داشته باشیم نه خیر زمان پدیده ریاضیاتی و منطقی نیست <تصفيق> همطور که گفتم دانش یونانی و اروپایی و علماء و فلاسفه و دانشمندان این خطه به این دلیل دوربر مدل زمان نرفتن چون مجبور بودن که مبدع و معاد رو تر بکنن چون بدون اون اصلا درک دیگه ای نمی توانستان داشته باشند. آنها از زمان باطنی بیگانه بودند از زمان روحی بیگانه بودند و زمان چون زمانی کمی بود اصلا احساس میکردم آقا احتیاج به بحث نداره اصلا موضوع فلسفی نیست موضوع در معنی نیست بلکه بحث از و نجومی است برای همین بوده که تمام مسالی در زمان کار شده در دانش اروپایی واقعا زمان نجومی بود چون تکنولوژی یکی از نخستین علوم یونانی بود علت میشن این بوده که اینها ها اگر میخواستن زمان رو واقعا حکمتش رو رادش رو موری برسی قرار بودن مجبور به تصدیق مبدع و معاد جهان و انسان بودن و نظام مجبور بودن قبول کنن که عالم هستی خالق داره و از عدم خلق شده در کل حکمت اروپایی فلسفه اروپایی رو بخشید همچین اعتقایی وجود نداره که عالم هستی از عدم خلق شده مطلب یعنی یک ماده‌ای بوده در جهان مرتبا تغییر شکل داده و این سیر تکامل رو کرده و باشر میمونه باشر sust در ماده مثل نظریه تکامل داروین خب اونجایی که نظریه داروین رو به اون بستسون معروف به حلقه مفقوده داروین این بود که ایشون نتونسته دقیق فرمول‌های خودش نشون بده که چگونه چه اتفاق افتاد که یک میمون یک دفعه تبدیل به بشر شد و صاحب شعور و معنا و خاصوالی بشری شد به نظر من بله واقعه تکفینی بود روح به ناگاه نازل شد بر یک میمون و یک میمون دفعه احساس بشری پیدا کرد این حقه مفقوده همون روحه روحی که در در یک میمون خدابند دمید و تصمیم گرفت که اون روح خلیفه خودش بکنه این حقه مفقوده در واقعه همون واقعه دمیدن روح در انسان در میمونه که از میمون بشر شد. مطلب دیگه اینه که حقیقتا میشه گفت گفتیم زمان ظاهری و باطنی داریم به بیان دیگر زمان کمی و کلیفی داریم به بیان دیگر زمان کلی و جزئی داریم همونطور که علوم کلی و جزئی داریم نکتر رو شرف عمودید که زمان یک مسئله برای انسانه فقط انسانی که زمان رو درک میکنه پس زمان پریدهی معنایی صد, صد انسانیست انسان است در این انسانی است علیه وار می شه گفت انسان هوانی زماندار و زمان فن. انسان تنها هوانی است که زمان رو درج و احساس میکنه چون زمان رو که احساس میکنه رضا تباهی تخریب و و نیستی رو درج و احساس میکنه و به همین که انسان تنها هوانی است که هراسانه انسان هوانی است ترسیو و هراسان چون زمان رو احساس میکنه رضا نابودی رو احساس و درج میکنه رضا موجودی است تمام. که اون برای اینه که بتونه برای این وحشتش فائق بیاد و از مرگ و تباهی و نیستی خودش نجات بده. پس از این دیدگاه بتر میشه فهمید که زمان یک پدیده سیری معنایی 100 درصد انسانی. ولی گفته شد که با حبوط آدم حوا از بهشت با خروج آدم و از بهشت زمان انسانی شروع شد. زمان نجومی قبلش هم وجود داشت. بعد از انسانم وجود خواهد داشت در این تئوری نیست. این زمان مادی زمان فیزیولوژیکی زمان مکانیکی است، زمان کوانتومی و اتمی است. زمان انسانی نیست، زمان 100 درصد ولی زمان انسانی با خروج آدم از بهشت شروع شد. چرا؟ مگر بهشت محضر پروردگار نیست؟ مگر بهشت قلمرو احساس بدانیدی نیست؟ ها قلمرو اگر تماماً قلمرو عزت و سلامت و آرامش مطلق برای این اساس احساس جابدانگیست یعنی است که در اونجا زمان نجومی زمانی که به انسان احساس حرکت و تغییر و مرگو نیستی میده در اونجا وجود نداره چون احساس مرگو نیستی و نابودی وجود نداره نظر بهشتی اصلا بهشت همین ها هر از حسارت زمان نجومی خارج شد انسانیست بهشتی در بازمشو گفت انسان بهشتی انسان ده ده در ایمان، در از زمان دیگه است. انسان به میزانی که اثیر ساعت دستشه، انسانی است، جهنمی بیقرار و حراسانی از مرگ و نابودی که صبح میشه که شب میشه که عمر من چی شد که میمیرم و نکونه بمیرم این داستا. بنابراین این امیزانی که آدم حوا در بهشت این اثنانی جا بودن میدیرد درشون خست شد و شک کردند به ایمانشون و به پروردگارشون در واقع خست شده شده شده ولذا از بسبسته های ابلیس شدند. در واقعه بجوابدانی گیشون شک کردن جوابدانیگی درشون خاصه شد رضا از زمان باطنی و سلوادیت خارج شدن و شمارهش آغاز شد یعنی تاریخ آغاز شد یعنی زمان آغاز, آغاز شد باز در واقع وقتی ما از زمان بشری رو می‌کنیم در دقیقا داریم از تاریخ صحبت می‌کنیم تاریخ نه معنی ماله دیگری وجود داره یک سخن از امام علی علیه السلام هست سوال می‌کنن که قبل از آدم که بود بر روی زمین؟ میگن قبل از آدم آدم بود باز هم آدم بود نوعی, از آدم. نوعی دیگری از آدم بود باز سال میشه از حضرت که قبل از اون آدم که بود میگه باز هم نوعی دیگری از آدم بود و بعد نایت هم میفرماد که شما تا قیامتم سال کنید کی بود تا بود آدم بر زمین بود و بعد میفرمان که آدم پیرترین موجوداته آدم هستیست خدا ذریع می که من فقط دو سال یا به روایتی دو روز از خدا سننم کوچکتر. دارم یعنی از جاودانگی دو سال کم دارم یعنی از خداییت از سرمدیت دو سال کم دارم پیانبر می فرماد پیانبر اسلام که من خود زمانم یعنی بس خود جاودانگی هستم مفهوم پیر در اقفان اسلامی یعنی همین بس می بند زمانم یعنی عمری من باندوزه عمر زمانه همونطور که زمان انتها و ابتدایی نداره ها من میلیاردها میلیاردها سال عمر کردم این عمر چه چگونه به دست اومد هستی که ذکر به دست اومده هستی یعنی که ذکر این زمان رو تا جداش و به معرفت دارم اومردم این جاودانگی در همه انسان‌ها هست ولی به واسطه معرفت و ذکری که این جاودانگی حی حاضر میشه و, و جاری میشه و به دست میاد این هم خداییاته این هم لوحیاتیاته حضر علی باز هم در ادامه هم بازش می این خاک خاک آدم کل زمین قبرستان بنی آدم خب اینها ها مثالی نیستن حضر علی شاهر و اسطورساز و استعار پرداز نبودن ایشون بازه یک ای نیدادن این هینه واقعی یده در قرآن کریم هم داریم وقتی که این آدم رو که قوار خلیفه خدا بشه این آدم شیش هزار وقتی خواست خلق کنه، مداری اومدن گفتن پروردگاه رو این چه دیوانه خونخاری میخوایی این حسابش داده این وحشی ترین خونخار ترین وازادم ترین موجودی بده که شما خلق یردی حالا این خونخار رو که زمین رو به خاک خون کشیده حالا میخوایی تازه به یه خلیفه خوریتم جانشین خوریتم بکنی برای همین بود که آده یه نبودن سوچ و اون داستان که در قرآن پس معلومه که قبل از این آدم خلقونه آدم وجود داشت بر روی زمین قبل از اون آدم اون، این که ما بنی آدمیم قبل, قبل از این آدم شیش هزار سال و بعدان توی عرصه آمد آدم وجود داشته آه؟ به شکلهای مختلف و صفتهای مختلفی ولی این آدمی که قراره خلیفه خدا باشه و صاحب رو بوده رو درشت امیده شده این عمره شیش هزار سال آه. این رو بشه, بشه. اینا در این حال اطراف باعث کرد که این رو صوبت ها نمیشه با جمع و تفریق و ضرب و تقسیم حساب کرد حقالق بسیار اساسی تر و متافیزیکی و روحانی تره درک این نهایتا درک روحانی است درک شهودی و قلبی است ریاضیات و دانش نجوم و فیزیکی و هر آنجاست که ما تجرّبه‌ می‌کنیم نمی‌تونیم اینا رو محاسبه کنیم و به اینه خاص با باشه حواستون باشه به دام این محاسبات نیفتیم در این رو ما این دانش‌بیزی رو مطرح کردیم تا ابهیت قضیه روشن کنیم که تا همین دانش جعلی و دنیاوی و وارونه هم جبران ما اگر نگاه از چشم حق بینی هم ما می‌بینیم که داره علارقم الهی خودش داره این حوازای دینی رو این دینی رو تفسیر می‌کنه و نکنه پس مسئله واضح است که از زمانی که روح در انسان درمیده شد آن میمون خونخار تبدیل به آدم شد میدار شد به خودش آمد نوبت شروع شد احساسی جاوزانی درش بدید آمد در بهشت مقلیم شد باز شک کرد دچار وزفصای ابلیس شد از بهشت شد و مفتلا به جبر زمان شد به نظر من جبری اصافی تر و ذاتی تر از جبر زمان برای انسان وجود نداره همه جبرهای دیگر معلولند. انسان اسیر جبر زمانه تاریخیت و تاریخیگی همینه جبری تاریخ هم بیان دیگه‌ای از همون جبر زمانه تمام ها جبر زمان هستند این رو واسطه بده و انسان به میزانی که اثرات جبر زمان در میاد دو واسطه ذکر و فکر و معرفت و تسکین نفس به اخلاص در واقع غلبه روی ایمان اخلاص توحید و جاودانگی و ابدیت حاصل شده که اون حسه‌ی حضور پروردگار برای همین است که در زمان سودی و قوص صعود که ما صحبت کردیم گفتیم قوص ان لله و ان اليه راجعون هست که ما الان در آن دوران هستیم 1400 سال تقریبا قدم روی بازگشت به خدا و روی کرده به خداست و پشت به دنیا و مادیته و روی به حق روی به جاودانگی و سرمدیت ذات الهی است. bundle تمام ارشا مفاهیم و علوم دنیاوی که در قصر نزول داده بود در این قدم رو محکوم به ابطال میشه. منطقه حق این ابطال فقط در حق حق آخرا زمان و درک حق قیامت ده میشه حق این ابطال علم دنیوی و اردشای دنیاوی و اخلاق دنیوی چون کل کائنات عالم آدم هستی جبرن رو به خدا شده داره واز میگرده به مبدأ خودش لذا این اصر اصر شده از لازم مفاهیم فلسفی و اخلاقی و فرهنگی لذا نهیلیزم یعنی بوچی و نابودی بذا همه چیز نابوجیزا شده تمام اون در اصول خودش دارن پوک میشن و دارن خودشونو رسوا میکنن و دی بنیادی رو دارن آشکار میکنن در افعال و اعمال و کالا و صنعت و فرهنگ و مدنیات بشری چرا برای اینکه روب خدا شدن یعنی روب جاودانگی شدن اون دانش و فرنگی که بر اساس آدم پرستی و فنا پرستی و توایی پرستی پایه‌ریزی شده بود روب جاودانگی شده مجبور بود بشه برای همین قیامت در قرآن باز مفهمیدگیش نگه. رویه, رویه با خداست واقعی لغاولاست واقعی ظهور جمال وحدانی پروردگار واقعی حشر کل بشریت محور میشه و در حضور خدا قرار میگیرن انسان ادم پرست وقتی ادم رو برای خود تبدیل،, تبدیل برای خودش تبدیل به وجود کذایی کرده بود حالا که رو به وجود حیلی هست وجود کذایی خودش رو نابود شده میبینه احساس بوچی احساس بوچی و احساس نابودی میکنه ببین انسان واجب المثالات و کافر وقتی به خدا میکنه که خدا به عنوان منشای وجود و علت وجود و معنای جاودانگی در حضور جاودانگی و وجود اساس نابودی بشاست میده خب اگر این دوران دوران پوچی و مرگ و, و نیستیه برای اینکه کل عالم هستی و در راستش بشریت جبران رو به خدا شده ما هم در وی خدا هستیم برای همین ذهن در همین دوران فقط میشه به خدا جوداشت کرد و همین ابن ربی بزرگترین عارف فیلسوف مقاب جهان اسلام میفرماد که آن مسلمانی که تلاش نکنه و امیدهبار به دیدار خدا در همین دنیا نشه او مسلمان محمدی نیست ا او ایسی یهودونصارا است. مسلمان محمدی در همین دنیا بایستی تلاش کنه و امیدهبار به دیدار خدا باشه اشما لبته موضوع توضیح نداده بس قیامترا متاسفانه هیچکدوم از رفایمان تا آنجا که من خبر دارند واقعا توضیح ندادند نشانه های قیامت و واقعی قیامت و نه معنای استوره یا میتافیزیکی قیامت تعیین قیامت در قرآن متراده با معنای واقعه است. تمام اسرار میتافیزیکی در فیزیک تعیین پیدا میکنه داره قیب داره آشکار میشه. خب جهنم و برشتم دو سیمای کلی از قیب در قرآن آمده که به هشت جهنم آشوار شد و بهش هشت بسیار نزدیک شد ببین؟ اونا دو سرد کلی از قیب